درود و عرض عدم. من جانان جوان هستم با افتخار یک معلم شما شنونده همراه اپیزود اول پادکست با جانان هستید. یه روز داشتم دفتر دفترمشق قدیمی می زدم. کنار حل تمرین های ریاضی یه جمله کمرنگ با مداد نوشته بودم این به چه درد زندگی میخوره؟ اون موقع شاید فقط یه بچه بودم که از ضرب و تقسیم خسته شده ولی حالا هر وقت زندگی یه معادله پیچیده جلو پان میذاره یاد همون جمله کمرنگ میفتم این پادکست یه جور برگشتنه برگشتم به سوال‌هایی که سالها پیش پرسیدیم و کسی جوابشو نداد ما اینجا دنبال اون چیزای کوچیکی هستیم که توی هاشیه کتاب ها جا موندن ولی توی زندگی خیلی بزرگتر از چیزی بودن که فکر میکردیم دانشی که در هاشیه کتاب ها پنهان ماند این اپیزود دعوتی به اون کلاس بیمعلم جایی که تختش زبانه صداش درون توئه و نمرش حال دلته ما جغرافیا رو حفظ کردیم ولی هیچ وقت متوجه نشدیم مرز بین خود واقعیمون و توقع بقیه کجاست فهمیدیم غاره ها چند تا هستن ولی نفهمیدیم خودمون چند تیکه ایم و چطور این تیکه ها رو باید کنار هم بچینیم بلد شدیم کشورها و قارهها ها رو بشناسیم اما زندگی بهت یاد میده مهمتر از نقشه جهان نقشه دل آدماست یاد بگیر که هر کسی یه دنیای متفاوت داره توی درس ریاضی ما بلد شدیم مساحت دایره رو حساب کنیم ولی هنوز نمیدونیم شعاع درده آدم چقدره توی تاریخ گفتن که پادشاهها و جنگ‌ها چطور بودن و چه اتفاقی افتاد اما زندگی بهت میگه مهمترین یاد بگیری از اشتباهات خودت درس بگیری تا تاریخ زندگی تکراری نشه و حتی توی مهمترین درس علوم یا همون ترکیب زیست و شیمی یاد گرفتیم قلب پمپ مواد شیمیایی واکنش نشون میدن ولی زندگی بهت یاد میده گاهی یه لبخند ساده مثل کاتالیزوره که میتونه واکنش سردترین آدم ها رو به تبدیل کنم. بریم سراغ کلاس موسیقی. توی این کلاس نوت دوره رو یاد گرفتیم. ولی هیچ کس نگفت سکوت هم یک نوت مهمه و جایی که آگاهی داری کلمات زخم میزنن سکوت شفاست. توی زنگ هنر مهارت ترکیب رنگ ها رو برای خلق یک رنگ جدید یاد گرفتیم. ولی هیچ کس به همون نگفت که توی زندگی بعضی روزا باید رنگ غم رو با لبخند ترکیب کنیم تا یه حس جدید بسازیم به اسم امید قوانین فیزیک رو از بریم ولی هیچ کس نگفت قانون سوم نیوتون توی روابط آسیب میزنه به روانت و گاهی الزام نیز هر عمل شخصی عکس عملی از شما رو به همراه داشته باشه توی تربیت بدنی برامون مسابقه دور محوطه حیات رو ترتیب دادن ولی چرا هیچ کس نگفت که گاهی باید آروم باشی نفس بکشی و به یاد بیاری که زندگی یه مسابقه نیست یه مسیر پیاده رویه همراه با آدم هایی که دوستشون داری از مسیر لذت ببر وقتش به آموخته هامون امیغتر نگاه کنیم. باتن توی کتاب مدرسه زندگی می نویسه که ما چطور توی سیستم آموزشی یاد گرفتیم نگران اشتباه کردن باشیم. ولی توی زندگی اشتباه دقیقا جاییه که رشد شروع میشه. درسته که یاد گرفتیم نمره کامل بگیریم. ولی چقدر حواسمون هست درگیر کمالگره افراتی نشیم؟ که کمالگرایی مثل یه خدکش شکست است که هیچ باهاش باش اندازه واقعی خودمون رو نمیشه سنجید. آموختیم زیر نکات مهم خط بکشیم ولی هیچکس یادمون نداد چطور روی چیزهایی که آرامش روح و روانمون رو خدشدار میکنن خط بکشیم. روی آدم اشتباهی، حرفای بیربط، کارایی که روحمون رو خسته میکنن. به خاطر بسپاریم اهمیت گزینه حظ رو برای آرامش روانمون که ما شایسته این آگاهی و آرامش هستیم ممنون از همراهیتون